اعتماد به نفس واقعی چگونه است؟ اعتماد به نفس واقعی هیچ رابطه ای با اونچه که در زندگی بیرونی شما اتفاق میفته نداره. منچه اعتماد به نفس واقعی شغل، درآمد یا شهرت شما نیست. اعتماد به نفس واقعی نتیجه باور قلبی و درونی شما به توانایی هست این باور که هر کاری رو که بخواید میتونید انجام بدید. اعتماد به نفس واقعی اونه که روی توانایی‌های ما اثر بذاره. توانایی هایی که در طول زندگی به دست میارید با اینکه نظر زیاد میرسند ولی باز هم کافی نیستند اگر معیار اعتماد به نفس خود رو بر پایه اون توانایی ها بذارید هرگز نمیتونید به اعتماد به نفس واقعی دست پیدا کنید و فقط در اون توانایی های به خصوص احساس اعتماد به نفس میکنید میتونم با کمال اعتماد به نفس بگم که یه برنامه نویسی و توسعه دهنده وب نخبه یا پدری فوق العاده اما اعتماد به نفس رو که در همه حالات به همراه من باشه توی وجودم احساس نمیکن. برای چند لحظه خوب فکر کنید. آیا تا به حال پیش اومده که موفقیت فوق به دست آوردید و در همون حال که از اون موفقیت مسرور هستین اما باز هم احساس خوبی نسبت به خودتون نداشته باشید؟ در ادامه چند مثال می زنیم. شاید سالها به دانشگاه رفتید و همیشه سرگردان بودین که آیا از پس امتحانات پایان برمیام، آیا میتونم در آخر فارغ و تحصیل بشم؟ آیا میتونم پایان نامم رو به خوبی به پایان برسونم؟ بالاخره بعد از سختی‌های بسیار و درس های طاقت فرسا در روز جشن فارغ التحصیلی با خودتون گفتین خب بالاخره از این مقطع فارغ و تحصیل شدم. حتی با این مدرکم اطمینان ندارم که آیا در آینده میتونم به همه آرزوهام برسم؟ آیا متوجه منظورم شدید؟ اگر قرار بود اعتماد به نفس شاگرد ممتاز شدن یا قبول شدن باشه کافی بود چشمان خودتون رو ببندین و احساس کنید که بلاخره از همه سبقت گرفتید و خوشبختی برای همیشه متعلق به شماست حالا به یه مثال دیگه توجه کنید فرض کنید به شغل خاصی علاقه زیادی دارید و میخواید به هر نحوی اون رو به دست بیارید سالها شغلهای زیاد دیگه یا که هیچ علاقی به اونها نداشتید رو به اجبار تحمل کردید و بالاخره شغل مورد علاقه خودتون رو یافتید از نظر دیگران بسیار انسان موفق و توانایی هستید ولی با این وجود نسبت به خودتون احساس خوبی ندارید شاید از خودتون بپرسید چه اتفاقی افتاده متوجه نمیشم همه این سالها سخت کار کردم تا به این موفقیت دست پیدا کنم اما اونطور که فکر میکردم احساس اعتماد به نفس نمی کنم. هنوز هم همون احساس همیشگی رو دارم اگر اعتماد به نفس توانایی رسیدن به مقام پول و غیره بود در صورت رسیدن به اونها باید احساس اعتماد به نفس و قدرت در ما همیشگی می شد. اما حقیقت اینه که اعتماد به نفس چیز دیگه ایه. اکثر ما در آخر شغل، درآمد، ازدواج یا خونه یا که همیشه آرزوش داشتیم به دست میاریم. اما باز هم احساس اعتماد به نفس و خودباوری نمی کنیم. اعتماد به نفس باور شخصی شماست. نسبت به روح خودتون. به عنوان یک انسان. این اعتماد که هر اتفاقی که در زندگی شما پیش آید و با هر مشکلی روبرو شوید هر کاری بتونید با کمال میل انجام بدید اگر به عنوان یک فرد خود رو باور داشته باشید به رغم اونچه که با آن روبرو میشید تمام کارهایی که لازم است انجام میدید و به هر چه که میخواهید دست میابید. با این نونگرش اعتماد به نفس واقعی اعتماد به یک توانایی مانند وکالت، نوازندگی، فروشندگی یا غیر نیست بلکه اعتماد به توانایی های شما در عمل کردن و اقدام کردنه آیا تفاوت بین عمل کردن و اقدام کردن رو احساس می کنید بار میگه اعتماد به نفس شخصی خودم رو بر کارهایی که انجام میدادم استوار کرده بودم و اگر به نتیجه مطلوب می رسیدم کمی احساس اعتماد به نفس میکردم. اما این احساس به محض اینکه نتایج و دستیابیهای دلخواهم رو به دست نمی آوردم از بین می رفت. برای مثال اگر در یکی از سמינارهام 500 نفر حضور داشتند، احساس اعتماد به نفس می کردم. ولی اگر در سمینار بعدی هفتاد نفر شرکت می کردن، نسبت به خودم بی می شدم. سایر مسائل زندگیم هم به همین منوال می زشت. اگر یکی از کتابهام در مدت یک هفته جزء پر فروشترین بود، احساس اعتماد به نفس می کردم ولی اگر هفته بعد نام کتابم از لیست پرفروشترین ها خارج می شد اعتماد به نفس من هم از بین می رفت. بسیار متغیر و دمدمی مزاج و بی صوبات. اما متاسفانه این توصیفی از زندگی اکثر ما جالب اینجاست که هر وقت پاسخی رو که دنیا به هدفها و آرزوهای من میده بر اساس اعتماد به نفس خود قرار میدم سبب میشه تا بیشتر اوقات احساس اعتماد به نفس خود را از دست بدم. مشخصه که هیچگاه نمیتونم برخوردی رو که جهان و جهانیان با هدفها و آرزوهای من دارن کنترل کنم. از نظر نمیشه هم نمیشه این, چون این توقعی داشت که برای همیشه به همه اهداف و آرزوهای خودم برسم، زیرا جهان هرگز اینطور نیست و نمیشه روی نتایج حساب کرد. تنها موضوعی که میشه روی اون حساب کرد، تعهد و پایبندی به خویشتنه. من میتونم درباره آرزوها و هدفهایی که دارم با خودم صادق باشم. و کارهایی که باید برای رسیدن به اونها انجام بدم رو به تعویق نندازم و روی اراده خودم برای انجام این کارها حساب کنم. این تنها موردیه که میتونم به اون اعتماد داشته باشم. من میتونم به تمایل و توانایی های انجام دادن هر چه که لازم بود صورت بگیره اعتماد داشته باشم. سخن پایانی هنگامی که اعتماد به نفس و خودباوری خود را بر اساس آنکه و آنچه بر براستی هستید و نه بر اساس موفقیت ها و دستیابی ها یا شکست ها و نکامی های خود بنا کنید چیزی را در خود خلق می کنید که هیچ کس و هیچ چیزی یارای گرفتنش را از شما نخواهد داشت